یه جور می کشکم مرتقب نشده بود چه ربطی دارم اگه کسی توالا به جور نشده باشه هرکی رو دلش خواست میتونه بگو خوشه بعدم راحت بخشیده شه. این انصافه ام برادر من حق زندگی نداشت ازم اگه چی کرده بود که باید کشته میشود حرف تو حرف ولی دیگه ندارم ولی دیگه ندارم ببخشید این میگم ولی هیچکس کس جای ما هیچ کس هم از درد دل ما خبر ندارم بعدم اگه خود شما نگفتیم بساز حق چرا نمیزاریم به حقمون برسیم چرا اینقدر ما رو تو فشار میذاریم ما داغ دیدیم امون من دلم نمیخواد برو پاشون تو این خونه بذارم باشه. راست برم بگم برم باشه. این خیلی خوشگلن نه؟ آره مادر وای مامان جون از قیمت ها نفرستین که سرتون تون میکشه خیلی خوبن مبارکتون باشه مشالا که خوشبخت بشین ممنون مامان جون به پیشنهاد ساما فکر کردی. عقد تو زندگی روز مهم میدونم می تو مطمئن نمیخوای خود به تو تو زندان بخونن من فقط میخوام داداشم کنارم باشه حالا هر جا من که از خودامه بلی این تصمیم که تو باید بگیری من تصمیم همو گرفتم خیلی خوب من فردا میرم با غازی صحبت میکنم ببینم چی میگه برگونت دارم الائی رفت چه اما بیبردی نه مادر خیلی هم خوبه خیلی در بیدم سره نه خیلی هم قشنگه خدا رو شاید. اونا چقدر خوش راست هیچی ازش خبر نداره من نمی‌فهمم مرتضی برای چی با باشه پلیس دنبالشه پلیس واس به جرم آخازی مییدون استقامت له کیه به پلیس نگفته میخواسته از آرش باج بگیره اصلاً فکر نمی یه این همچینایی باشه بر من به خاطر ماهی سارا گفتم بیای مزایده سابق رو باطل اعلام کردن قرار شده که یه ای تازه برگزار کنن البته بهرامی احمد تو شرکت کنه میخوام مایسران رو نگه دارم خب چه کمک دست من برمیاد میخوام یه کار بهت پیشنهاد بکنه چه کاری؟ میخوام مدیریت مایسران رو قبول کنی اون مدتی که اونجا کار کردی پسرم خیلی از کارت راضی بود نکنم این کار درستی باشه من فکرامو کردم ما هر خطا کردیم من در گذشته رتون سرد و پیشمان حالا تو حالا دیگه گذشته ها گذشته و به فکر کارگار ها باشیم اگه ما این سرا کار نکنه یه دادن از نوم خوردن میفته. لطفه شما رو میفهمم ولی خیلی برای اون کار سختیه بخون دوباره برم تو اون رو اون کار رو به چچه خواهم به من نگاه میکنن همشون اگه تو روم نگن تو دلشون میگن این همونی بود که رقعه موزایده رو داد به برامید مسائل کوچیک که و قابل بعد هم با همشون حرف میزنم صحبت میکنم تازه الان یه همه شون میدونین که قاتل پجمار من کی بوده سلام آسان سلام آسان من میخواستم و بعد حرفایی من ازتون عذرخواهی از کنم واقعا حال خوبی نداشتم ببخشید نه خواهش میکنم شما حق داشتین فکر میکردین برادرتونو من کشتم من ازتون یه درخواست داشتم خواستم ازتون خواهش کنم با خواسته پدرم موافقت کنین. پژمان اون مهی سرا خیلی صممت کشیده من نمیخوام زحمتش به باد بره. من دستاها واقعا پس اونجا برنامه من که بچه کوچیک دارم از دستم بر نمیاد. الان هم فقط منتظرم تکلیف قاتل پژمان مشخص شه. بعدش بلا فاصله باید برگردم اصفهون بیش شوهر. نمی کمکتون کنم شما در جریانت خویتون من چند ماه بود جو مشغول شده بودم به کار یعنی یادم با تجربه میخوام کنارم باشه که راو چاوه بگه میخوام میخوام خانوم رو اونجا کنارم باشه خانومت من دارم ازدواج میکنم با آشادی خانم. آه. مبارکه ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که شادی خانم برگرده اونجا آخه چرا؟ چرا؟ چون برادر شادی خانم پجمانو کشته چرا؟ ولی شادی اصلا تخصیری نداره تو این ماجره بله ما میدونیم تخصیری نداره ولی نمیتونیم اجازه بدیم برگرده اگه نه بابا من میدونم تو چه حسی داری ولی اگه میخوای که کاری رو که علای پجمان کردی جبرانش بکنی استاد مرا قبول كن. بازيش بانم خوشحال میشم جاره تو کاری كردم. بازا بوز، بفهم نمي‌بره. مانده باقی میبه آجالی آنه بزن ممنون ممنون چیه؟ ساعت دفعه بعد نگفتم اینجا زندان اینجوری رفتن زنگا به خبر خوش داداشم رفته بود پیش مادر مخطور همین بهروز خدا بیاموز یه خود پول دیر رو براش برده به گینگی مادری یه ذره نرم شده ولی باست اینکه رسمن بیاده رضایت بده یه موسفرده میکنه خدا درست میشه. شده عرض عرض عقل عقل تو چرا واسه تو فکری؟ چیزم نیست. دور. عهد خاهم. عهد خارجه، اول ناراحتی. فکر کنم اینکه دعوت نیستی ناراحتی. نه. به‌طرفان تو ماراتون افتاش هست. آکلک، مرخصی گرفتی نه؟ راشید، سارکو رو موزهشتی؟ مادرم رفته اجازه گرفته که مراسم عقد تو اتاق ملاقات برگزار میخواسته من باشم تو مراسم. اوه، دعایشون یار. چه خانواده باحالی داری تو؟ دیگه ناراحتی نداره که؟ مراسم عقد قاهره تو زندان برگزار بشه، ناراحتی نداره؟ راحتی ندارم اون کار با خاطر تو کردم مشتی تو تمرین کنی بیا تو بی کارت تمرین چی؟ تمرین چی؟ بیا تو بیا تمرین دارم با چلی اما ایران نمیتونی؟ بفرمایید عمو کریم بفرمایید باشه وقتشه بذاریم برای جو بجو تو اون یه باش من ها آ verschiedene هیچ گوده اون فکرشو نمیکرد اگه اون شب خودم رو کنترل کرده بودم اگه دربا نمیکردم اگه اگه با اگه که نمیشه زندگی کرد که تو باید به فکر حالات باشی دیگه چیزی از زندگی نمونده که دکه بخواهم فکرش باشم پسر خوب اگه چند ساله تو داداش اینجوری حرف بود چه ربتی داره من ادامیم. فوق فوقش چند با نه یه سال یه سال دیگه زنده هم که من رو دست خداست دوبار مندادش تو نبهد نامید نا بشی خانوادت میرم با خانوادهش حرف میزنم مثل خانواده من تو جوانی تحصیل کرده ای بهتر از من داری نامیدی نا بدتر از مرگه ببین داداش هیچ چیزی از من باش. واسه زندگیت بجنگ. تسلیم نشو. ناامید نشو. اگه خودت هم مهم نیستی، واسه خاطر مادرت بجنگ. واسه خاطر خواهرت بجنگ. واسه خاطر اون نامید نشد نشو. باشو. باشی اون بس از تا آرش خود آرش بود مگه آزاد شد آرش از زندان زنی میزنه چه رویی داره این مردی که چجوری جورت میکنه زنی بزنه اینجا فردا و پامشن میرم زندان میگم دیگه اجازه ندم زنی بزنه خونم نیازی به این کار نیست بابا از خجا میتونین زنی نمیزنه دیگه نمیزنه میزنه بابا و میترسم انقدر زنگ بزنه تا شما دلتون راضی شد باشه حرف بزنی بعد انقدر انقدر زاری و التماس کنه دلتون نهرم شد میشنستم شما رو این دختر جان، من دیگه دلم نمیخواد رجب این موضوع هستن حرف بزنم باشه بابا من دیگه هیچ چی نمیگم فقط همین یه چیز رو پکم رو برم فردام عروسه به چلام پشمانه بابا من الان چهل روزه برادر ندارم تو رو به روح پژمان شل نشین رضایت بریم بابا باشه با. برو به فکر مراسم فردا باش هستم جام خیالتون راحت همسرت کی میاد بابا جم گفت شب میرسنس این که پرواز گیرش نایمیده حیبی نمید تو به کارای فردا برس خیالتون راحت بابا جونم All right. توندم آقاسم بهت گفت بله خافظیمه بعد همه کارو سپده دست شما بچه ها هنوز شما رو تو مرگ پژما ها مقصر میدون بیشتر من نمیدونین کی کارگرد چرا میدونن؟ ولی خب میگن شروع کننده ماجر رو شما بودی برقدار آیاان نمیخواستم اتفقا رو مع میفته میدونم برو بیاش شو آلا شما به دل نگیر اینا یه حرفی زدن منم هم کردم به شما گفتم اینا ها کارگرم گناه دارن زن باشون ندارم میخوام بهشون بگم من فقط برای مرحومه که اینجا ممادم گذشته رو جبران کنم کرو بیارشون باید همه با جون دل کار کنم بله ببخشید من مادر آرشم ببخشید آقا سلام علیکم سلام عیک شما فامیل آقا قاسم هستین بله دیدم زنگشون رو میشه لطفا من با خودتون ببرین تو قاسم آقا رو ببینم اینا در رو باز بازه میکنن شما مادر آرش هستین؟ بله خانم چرا انقدر میایین اینجا؟ هم گفته مدام مزاهمشو میشین خدا شاید من قصد مزاحمت ندارم اینا هم هرچی بگن حق دارن بچهشون از دست دادن ولی آخه بچه منم که عمدن این کارو نکرده این همه مدت واسه مقا خودش میفهمه بچه من اصلا بچه شر و شوری نبوده به خدا و طال پاش ترین نرسیده این بچه سیزده سالش بوده پدرش 60 ساله من بدون پدر بودم کردم خب چطوری بویسم دست رو دست بذارم بچه‌مو اعدام کنم قانون دلتونه بذارین جای دل اونا اون شب قرار بوده برم برای پسرشون خاصکاری اگه زنده بود الان دو مات شده بود اونا داغ دارن هیچ چیز دردی نمیده میدونم ولی آخه با مرگ پسر من هم چیزی درست نمیشه آقا پژمان زنده میشه به خدا من حاضرم هزار بار بمیرم آقا پژمان زنده میشه ولی نمیشه فقط یه آدم دیگه میمیره اونا حق دارن قصاص کنن شما هم جای اونا بودین همین کارو میکردین شما یه من با خودتون ببرین تو آقا قاسمو ببینم شاید نظرش عوض بشه. خانم هوا سرده شما بفرمایین الان هم دیر وقته من با شما صحبت میکنم. شما تشریف ببریم. چش. بس, بس من شما یادداشت یاد داشت که خبری شد به این خیلی بله بله حتما بفت سف نوزاز بله و نو چشخوان گذاشتیم؟ 40 شب گذاشتی؟ کی فکرشو نکرد؟ سردون کلی مهمون داریم. از صبح بعد بریم سر مزارم، من هنوز هیچ کاری نکردم استرس دارم. برو استراحت کن، فکری چم نباشه. من همه کارا رو خودم میکنم. خیالتم راحت باشه. همه چی درست میشه. مهرم. او باز اصری با صدام اونجا کنم نمیخوره. هنوزم افطار نکرده، برو ببین یه لقمه غذا میتونی بهش بخوره. باش. تامی خود فکر که خواهد باش. باش. چهل روزی که پسرمون ندیده. روزه که صداشون رشید نمیدونم چجوری تاو برده من هستم اون نیست شما که بیشتر از همه به قسمت و حکمت موتردین آبا جون پیمونه که پر بشه کاری از دست کسی بر نمیاد حتما دیگه عمرش به این دنیا نبوده داغ فرزند خیلی سخت خیلی تلخ از خدا میخوام که این درد و توتن دشمنامم هم نریزه کمرمو شکست ریشکنم که همه چیزم قارف گت برد دیگه به چه امیدی زنده هستی تو بیر برده. این چی من شد گفته بودم از این فکر را نکنه چرا گوش نمیده سامان چطوره اونم خوبه تو ماهی سرا رفته سر کار هوای شادی هم خیلی داره از خوبه اقلن اون هست خیالم راحت تره درش مادر زنبازی که در نمیاری به من میان چه بند جرس بذار بیرون حسابتو میرسم طوری شده اون نباد خودم اینو گل بزنیم انان این حرف یعنی چی؟ یعنی امید نداشته باشیم آزاد میشی؟ وقتی یک کلمه هم با ام حرف نمیزنه من چه امیدی داشته باشم که میبخشتم با خاصه محرف زده ای؟ زدم تا فهمید منم تلفون قد کرد خب حق دارم داقشون تازه است مادر شما چی؟ تونستیم باشه حرف بزنیم؟ قولشو گرفتم پس هنوز نتونستیم هنوز زوده بزر چهلومون خدا بیا بگذره خودم باهاشون حرف میزنم من شرمنده تونم خوبی نبودم دیگه هیچ وقتی حرف هم نزنی. من از تو هیچ بدی ندیدم دیگه بدتر از این که پاتون باز شد تو زندان این که یه اتفاق بوده بابای خدا بیا که زود رفت شما برای من و شادی هم مادر بودی هم پلن همیشه آرزوم کردم یه روز بتونم جبران کنم امیده تو از دست نده از زندان آزاد میشی میدونم بعد هممون هم با هم میریم مشهد من، تو، شادی، سامان، رونا بیچاره رونا زندگیش پای من نابود شد چرا این حرفو میزنی؟ رونا دوستت داره با هم ازدواج میکنیم انشاءالله خوشبخت میشین اما تو رو خدا شما دیگه این حرفو نزن رونا باید بری دنبال زندگیش پای من بمونه زندگیش به فنا میره بوس صحبت کنیم بهش بگی منو فراموشم کن رونایی که من دیدم به حرف هیچ کس گوش نمیده تا اگه دوستش داری امیدت از دست نده <تصفيق> هزار و این نفرم هم اپنو نصب کرد همینجوری ازادش رو میره بالتر میدارینا چیجوری این قصدری داری روش میکنه همین چندس بیش هزار نفری این اپنو نصب کرده بودن من که فکر میکنم به خاطر نزدیک شدن تعطیلات عید فتره چون مسافرات هم بیشتر میشه تازه بعدش هم که تابستونه همینجوری همیر بالتر خدا رو شک پس اوضاع خوبه آن روبره هم خیلی تو بگی نه تو بگی. راستش ما یه خونه‌ای دیدیم رامینم دیگه دیده خدا رو شکر مبارکتون باشه شما در چه خبر خوبی دیگه فردا پس فردا دیگه میریم رهنش میکنیم دیگه به سلامتی کم کم می‌ریم از اینجا این چند کن سال کنار هم زندگی خوبی داشتیم بالا پایین می‌شد مشکلات بود خوب بود الان باید مراقب باشیم با کوچکترین مشکل به سیما آخر نزنین بتونیم همینطوری کنار هم دیگه باشیم کم کم هم فکر بچه باشی چه باشین همین بایم هم داریم این <تصفح> شاید سلامتی هنوز نتونستم بخواه مواده مغتول حرف بزنم در شا چیز داد مادر ده. ده آرش ببینندش در ووش باز نمی میکن. رضایت اینا ضت بده نیستم. بعد دفت رو این جلسه دادگاه آرش. اما ج آرش, آرش ببین من چیکار کن؟ این چیزی فکر نکن میتر <متصال> رو چی درست میشه کوسه نم؟ یک کلمه هم نتونستن با پدر مقتول حرف بزنم. خیلی نگره نشن اگه بخواد این وز همینطور ادامه پیدا کنه، نمیدانم چه بلایی قراره سر دخترم بیاد بعد یه کاری کنیم فکر آرش از سرش بیرون کنه ببین میتونیم راضیش کنی باش بریم مسافرتی جایی نه حسین آقا نمیاد همه فکر و ذکرش آرشه هر روز میره در خونه آرش با مادرش حرف میزنه بلکه یه اتفاق تازه افتاده باشه یعنی میخواد تمام عمر امید بخشیده شدن یه اعدامی بمونه فعلا که امیدش به همینه منم امیدوارم آرش زودتر بخشیده بشه بله نمیدونم سرنوشته رونا چی میشه اگه آرش رو ببخشن و آزاد بشه شما با این ازدواج موافقی؟ رونا آره دوست داره منم خوشبختی بچم از همه چیز برام مهمتر. ناسم جم امروز سر خاک خیلی بیتابی می کردی اینطوری خودتو از بین می بعد باید رو کنترل کنی اگر نه از اینم که از بدتر میشه. از خانواده آراش چه خبر؟ هر شب مادرش اینجا بود با شرف زدی من بهت زدم واسم تا الان وقت دردت پیجمان نیست آرشم هست من مطمئنم که الان داری به اون فکر کم بیشتر فکر کن شاید نیگه در نمیخواد خود را به این قضیه حرف بذاری باشه من بعد برم خیلیه خیلی مریض دارم زحمت کشیدی جنرل جان محبت کردی خدافر شب که اومدم یه خانمی رو جلو در دیدم کی بود مادر آرش تو از کجا میشنسیش اومد جلو با هم حرف چی گفت بچه همو یتیم بزرگ کرده ما اون شهر نبوده با با ادامه اون آقا پیجمان شما که بر نمیگرده از اینجور حرفا اصرار داشت که با شما صحبت کنه مهران مراسمه خوبی بود مهران جان بچه نداری. خوشت نداری بیا بیا کار دارم چی داشتی به آبا میگفتی هیچ هیچ چی میخواستم اجازه بده مادر آرش با حرف بسن مهران تو یادت رفتم امروز کجا بودی این چه انتظاری از من و بابام داری بلچه من ها عذیت میکنی میخوای داغ دلمو تازه کنی حق با شماست ولی اونم مادر دیگه بذار حرف رشه بزن من نمیخوام تو دخالت کنی بی برو من به خاطر لاستیکو ببینم آقا واکن داریم چهار کلم حرف بزنیم خب زنم پلیس بیاد رو وردون کنه اینجوری بدتر عصبانیشون میکنه من نمیخوام زندگیت پای من از بین بره حق آراش نیست پلیس هم نشش این بوده کارش هم نمیشه خفه شو صدانت و فانکشنری میکنی پلیس پلیس با چم کردی پای آقا به خدا من نمیخواستم توش تو یا تاریکی آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یهو بارون آرید دستای خون پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید رویی رپل نه شاز دک مهای قلب من دون دونشول شدم گفتم این یه موزه است خیره شد به آسمان همه ستوارهاد دون دون گل شدن مهربونی نازنی نی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 مهربونی ای یش نازنینی ای آخرین تیکه